داستان هشتم فرستاده امضا از میدان تقسیم به طرف هربیه میرفتند یکیشان پیر بود و دیگری میان سال داشتن از پیاده رویه سمت راست میرفتند کمی جلوتر درست سمت چپشان اتومبیلی بسیار شیک توقف کرد راننده پیاده شد و در عقب سمت راست را باز کرد مردی درست عین تیپ آدم پولدار پول دار که توی کاریکاتورها میکشند از اتومبیل پیاده شد. پالتوی مشکی بلندی تنش بود با یقه پوست مینگ. شال گردنی سفید داشت با کلاه های انگلیسی. لبهایش قرمز بود و برق میزد درست مثل سیب سرخی که میوه فروش اول ها کرده و بعد با دستمال حسابی برقش انداخته باشد. نوک دماغش مثل گوجه فرنگی قرمز بود. اوشت پس گردنش لای لایه بود. شکمش انگار که پیشاهنگ بدنش باشد گنده بود و سه وجب جلوتر از دماغش میرفت. یعنی سرش از شکمش عقب مانده بود و شکمش جلوتر از سرش بود. به گمان مردی را که از اتومبیل پیاده شد خوب توصیف و جلوی چشمت مجسم کردیم. از دو نفری که توی پیاده رو می رفتند، آنکه پیرتر بود تا چشمش به مردی افتاد که از اتومبیل پیاده شده بود، ابتدات عجب کرد. اه اه. کمی صبر کرد، بعد گفت، این نظمی امضایی خودمونه. دوباره ایستاد، بعد یک دفعه پرید جلوی مرد پولدار و دستش را گرفت. مرد پولدار طوری که انگار دستمال آدم سرما ای را از نوکش گرفته باشد، دستی را که به طرفش دراز شده بود، یکی دو دفعه سرسری تکان داد و گفت چه خبرها غالب بیک؟ پیرمرد گفت خبرها پیش شماست غربان ببینید چه تصادفی دعا به جونتون میکنیم خیلی وقت هم دیگر رو نمیبینیم کجا هستید نظمی بیک؟ نظمی بیک که شکمش جلوتر از خودش میرفت هم راه میرفت و هم حرف میزد رفته بودم اروپا کنگره بین فورتیفیکاسیان بود خودتون که میدونید من عضو این هم رفته بودم تا نماینده ترکیه در زمینه فورتیفیکاسیان باشم او راه میرفت و حرف میزد پیرمرد هم دنبالش میرفت قسمت نمیشه هم دیگر رو ببینیم می بیک مرد پولدار دار طوری که انگار ترانه ای را زیر ربزمزمه میکند گفت اره بله ببینیم هم دیگر رو من فردا دوباره میرم اروپا. توی زوریخ کنگرهی بینول مللی هست. من نماینده آن انتخاب کردن. فردا میرم تو نماینده ترکیه در زمینه زرزنی باشم. سفر خوشی براتون آرزو میکنم قربان. خدا حافظ عزت سیاه. مرد پولدار انگار از شرری خلاص شده باشد بیان که نگاهی به پیرمرد مرد بیاندازد رفت و چند قدم آن طرفتر، در از در هوتلی لوکس وارد شد. پیرمرد هنوز داشت به دری نگاه میکرد که او واردش شد. دوست میان سالش سغلمهی به بازویش زد و گفت این که بود دیگه؟ پیرمرد گفت وای دهنشو کیه این؟ راه افتاد پیرمرد غرق در فکر سر به زیر انداخته بود و به سوال دوستش جواب نمیداد. مدتی در سکوت راه رفتند. بعد پیرمرد به دوستش گفت: اینو که دیدی؟ همین این مردی خود ساخته است. مقام و منصبش چیه؟ مقامش خیلی بزرگه. چیکار است؟ هیچ کاره. منظورم اینه که چیکار میکنه. هیچ کاری نمیکنه. ببین به این میگن نظمی امزایی بسر واسه تعریف کنم یه آلونک هست سر کوچه ای ما بغل جالیز. دیدیش که خب اون آلونک رو فکر کنم شبگرد قدیمی محلمون ساخته بود بعد یکی از اتاقاشو به این نظمی داد من اون موقع هنوز نمیشناختمش یعنی ندیده بودمش یه شب در خونمونو زدن زدم رفتم دیدم یه مرد لاغر مردنی با لباسهای پاره پوره دمه ده. اصلا از یادم نمیره توی یه لاستیک ماشین و قد کف پاش باریده بود و چند جاشو سوراخ کرده بود و از تو سراخ ریسمان رد کرده بود این شده بود کف شاش گفت سلام آقا بنده نظمی هستم اینجا سر خیابون تو خونه چسبیده به جالیز میشینم تازه اومدیم تو این محل گفتم فرمایش گفت از طرف اهل محلی ارزه حال نوشتم خودتون میدونین وضع کوچهمون خرابه همه جاش گل و شله اصلا نمیشه تو کوچه راه رفت از طرف اهل محل برای شهرداری درخواست نوشتم یکی یکی میبرم در خونه ها امضا کنن شما هم امضا میکنین گفتم خدا ازت راضی باشه البته که امضا میکنم رو انداختم پای درخواست تشکرم کردم رفت 15 روز بعد دوباره آمد و گفت یه نامه شکایت برای روزنامه ها نوشتم و قضیه رسیدگی نکردن شهرداری به وضع کوچمون رو تو شهر دادم. امضا میکنین همه اهل محل امضا کرده بودن، من هم امضا کردم. نامه شکایتمون توی روزنامه ها چاپ شد. امضای زیر نامه این بود. از طرف اهالی محله حاجی سلیم نظمی پیروغلو این نظمی هر ده روز بیست روز یه بار به خونه خونه‌های محل سر می‌زد و برای تعمیرات کوچه امضا جمع می‌کرد. برای شهرداری نوشت، برای روزنامه‌ها نوشت، برای وزارت خونه نوشت، آخر سر کوچه‌مون تعمیر و آسفالت کردن. از اون به بعد در نظرمون احترام پیدا کرد. تا اون موقع نظمی صداش می می‌کردیم. بعد از اینکه کوچه‌مون آسفالت کرد یواش یواش بهش گفتیم نظمی افندی. چند روز گذشت و این بار برای گذاشتن تیر چراغ برق سر کوچه‌مون شروع کرد به امضا جمع کردن همه اهل محل امضا کردند به اینجا نامه نوشت به اونجا نامه نوشت و آخر سر کاری کرد هر دو سر کوچه تیر چراغ برق کار گذاشتن. بعدش گفت رفتگر به کوچه‌مون نمیاد و باز شروع کرد به نامه نگاری امضا از طرف اهالی محله حاجی سلیم پیر پیرقلو اون رو هم سر و سامون داد برادر قبلا ماهی یه بار هم رفتگر توی کوچمون نمی اومد حالا هفته ای سه روز ماشین زباله با چند تا کارگر میومد تو کوچه ما هم یواش یواش صداش میکردیم نظمی بیک از بزرگ و کوچی که هممون می گفتفتیم نظمی امضایی همین جور پشت سرهم برای کارهای جور و جور امضاچم می کرد. رفته رفته شهرت نظمی امضایی زیاد شد. اسمش افتاد سر زبون ها دیگه برای امضا جمع کردن در خونه های ما نمی اومد ما میرفتیم رفتیم دمه در خونه اون نظمی بیک کار گاز کشی به کجا کشید نمیخوام به محله ما گاز بدن نظمی بیک یه نامه شکایت از دست این نونوا بنویس نون خمیر میده دستمون نظمی بیک این شعبه نفت پس چی شد اینطوری نظمی امضایی شد فرمان روای محله ما دیگه خودشو میگرفت. ما رو تغییر می کرد. توی محل حرف حرف اون بود. همه جا میشنختندش. توی شهرداری، توی فرمانداری، توی روزنامه ها، توی مدرسه ها همه جا. دیگه به محله ما هم رضایت نداد کارای کل منطقه رو نظم ای انجام میداد. دو هفته یه بار دعوتش میکردن آن کارا به کرد استانی میرفت بعدش دیدیم یه ماه غی زد. شنیدیم توی اروپا کنفرانس بینال آموزش عمومی تشکیل شده بوده. نظمی امضایی هم جزه حیعت نمایندگی شده و به اروپا رفته بود. یه <تصفيق> روز شنیدیم نظمی امضایی رفته آمریکا تا نماینده ترکیه باشه. نمیدونم تو چه کاری. بعدش این نظمی امضایی از محله ما اساس کرد و رفت. ما هم دیگه ندیدیمش. هر ازگاهی توی روزنامه ها می خوندیم نماینده ای نمیدونم چی توی اروپا و آمریکا بوده. خودت که دیدی الانم توی کنگره ای نمیدونم چی نماینده است؟ فورتیفیکاسیان نه اون نبود. یه چیز دیگه گفت. زروتاسیون آه ببین نظمی امزایی نماینده ای ما تو زمینه ی تو رو خدا ببین یارو از بس به اسم محل محل امضا کرد؟ کار و گسترش داد الانم به اسم مملکت امضا میکنه بار کل و به این نظم امضایی این مرد خود ساخته است. کافی آدم ه داشته باشه